اللهم صل على فاطمة و أبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم مبایستمون در سیاه بود حبت السوداء سودا دانه شفا بخش بود گفتیم فوائد مختلفی دارد و پژوهش‌های جدید علمی در مورد سیاه دانه حتی از هزار و 500 سال پیش هم مطرح بوده رسول خدا حضرت محمد الله علیه و علیه وسلم این در شب معراج شبی که به سوی آسمان میرفتم معراجم هم جسمانی یا روحانی بوده گذر نکردن بر من گروهی از ملائکه جز اینکه که می ای محمد صلی الله علیه و, علیه و سلم امر بفرما به امت خود به نوع به انجام حجامت شرعیه و بهتر از معالجه با حجامت معالجه با سیاهدانه و قسط می باشد. حالا بحثون تو سیاهدانه سیاهدانه فوائد متعددی دارد که بعضیشو گفتیم بعضیشو نگفتیم حالا چهل مورد از فوائد سیاهدانه رو یادداشت کنیم بعد ما حواشیمون رو هم میگیم حتی در درمان بیماری های جدیدی که پزشکی جدید درش مونده سیاهدانه یک پایین آورنده فشار خون دو باز خون قاعدگی کسی که آمنوره داره حالا چه آمنوره اولیه چه آمنوره سانویه سوم زیاد کننده ادراره مدره دیورتیک داره که چه طور آیاتشیه خربوزه رو بیشتر مطرح کرده در این زمینه و تو کتابای پزشکی تو بحث اورولوژی میوه ها بالاترین درصد دیاتیک در, در رسیدهس به قیخ. چهارم زیاد کننده شیر مادره برای فرزندش زیاهدان گرچه سوپ رقیق و مصرف شیر شیر تازه گاب و همچنین چای رازیانه اینها هم برای مادر چیه شیرافزاست حالا تو بحث ما سیاه‌دانن چیه شیرافزا پنجم خوشکننده اخلاط ششام ضد سم وارد شده در بدن حتی بخور سیاهدانه ضد حشرات ضد کلیت روده و همچنین گازهای اضافی روده نافعه برای یرقان و زردی نظیر کدو مسمما کدو ها که از 6 قسمه کدو سه قسمش تو روایاتشی اومده مثل یقطین، مثل دو مثل قرع. یعنی کدو حلوایی کدو تنبل که سبز لجنیت یا کدو خوررشتی کدو مسمما که مثل خیار سبز حالا بخارپه یا خام با پوستش میخورن کلسترول و تریگلیسری خونم میاد پایین انزیمای کبدی هم میره پایین در 24 ساعت یک عدد کدو مسمو با پوستش میخوره حالا خام یا بخارپز. یکی دیگه از فوائد سیاهدانه که نافع برای یرقان بود اگه از سیاهدانه در روغن زیتون بجوشه بعد که سرد شد با قطس چکون چند قطره در این سوراخ بینی چند قطره در این سوراخ بینی به چکونیم کسانی که زکام رطوبی دارن زکام رطوبتیشون چی میشه درمان میشه اگر کسی سیاه دونه رو سرخ کنه و بعد تو روغن زیتون بریزه یه چند قلی بجوشه بعد چند قطره شو در بینی به چکونه برای رفع زکام و رفع عطسه مفیده اگر سیاه با سرکه قاطی شد و در سرکه بخیسه کرم‌های درازه روده از بین میره یعنی زد کرم آسکاریست و زد کرم کدو گرچه تخمه خامه هندوانه زد کرمک و زد انگله اما او کرمای بزرگ روده ای مثل کرم آسکاریس یا کرم کدو بهترین داروشی جان سیاه دونه خیسانده در سرکه طبیعه که بخوره دوازده تا وقتی که خوب بشه دل درداشت و اشتهای بچه خوب بشه و دلدرده بچه خوب بشه و اشته های بچه به غذا خوردن خوب بشه از حیث رنگ رو هم رنگ روش برگرده زرد نباشه بی آب و تاب پوستش نباشه دوازدهان اگر کسی یک سگ هاری او رو گاز گرفت اینجا سریع محل گاز گرفتگی باید با صابون یا شامپو شستشو بشه سریع نظیر زخم پشهی خاکی که زخم سالک میاره ها سریع اگر جاد شسته بشه ها سم خونسا میشه محل آلودگی حال اگر طرف لف داد خونش آلوده شد مبتلا میشه به بیماری هاری که یک بیماری واگیره دیگه همونجا شخص رو قرانتینه میکنیم نه که برداریم سوار اتوبوس کنیم یا مینیبوس بیاریم مثلا تا مشهد بره بیمارستان تمام این مسیر بندگان خدا همه آلوده شنن بیماری هاری از بیماری های افونی مصریه واگیره و در روایات شیعه داریم لا عدوا فل اسلام اگر فرد و افراد جامعه رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی کنن و اصلا دیگه بیماری های مصری افونی بین مردم یا بین افراد شاییه نمیشه لا عدوا فل اسلام با عین و دال و علس مقصوره دار ادواس الاسلام تو روایاتش یادت ما بیماری مصری نداریم پس اگر کسی بیماری مصری مبتلا شد مقصر خودشه که رعایت بعضی اصول بهداشت فردی اجتماعی نکرد یا توی محیطی شایع شد و اونم باز مقصر اون افرادان که جایلانه و غافلانه عمل کردن حالا مباحث خودم در درمان بیماری هاری مصرف سیاهدانه. با اصل بسیار مفیده و کمک مهمی به درمان این بیماری افونی میکنه سیزده هم کسانی که طبهای مستمر دارن یا طبهای دائم دارن اینجا سیاه دونه با اصل بخوره طبهای مدامه میشه هم خوب میشه چهارده کسانی که گرفتگی صدا دارن بهدونه خوبه بعد از صحبتشون آب جوش بلرم یا آب سرد عادی بسیار خوبه یکی از داروهای مهم چیه؟ سیاه دونه رو با اصل مصرف کنه برای گرفتگی صدا خوبه اما اگر سیاه دونه مونده باشه یا پودر شده باشه در مجاورت هوا قارچی یا باکتریایی شده باشه یا در نور شدید که گاز خردل تولید میکنه این که خودش برونشیت حد و مزمن میاره ریاه ها رو درگیر میکنه برای صدا هم چیه؟ بسیار ضرر داره درست مومن پس سیاه دونه بدون اینکه پودرش مخلوط با اصل که به جای برای گرفتگی صدا هم مفید پونزده هم کسانی که سنگ های ادراری دارن از شن سنگ کلیه تا سنگ مسانه اینجا مصرف سیاه دونه با اصل بخورن بسیار خوبه اینا رو خورد میکنه و بعد مدرها ادرار آورها مایعات، مثل آب آب جوش یا میوهجاتی که و سبزیجاتی که مدره مثل لیمو شیرین مثل کاهو مثل خربوزه اینا همه چیه؟ مدره هلدهنده های طبیه. اول با سیادونه اصل خوردش میکنیم یا با جشنده آبه هسته خرما جشنده هسته خورمه خوردش میکنیم مؤمنه بعد با های طبیعی دفعش میکنیم حالا میتونه از طریق فیزیکی هم استفاده کنیم مثلا درجا تناب بزن یا وقتی تو سطح مستوی را میره ضربه ای را بره سنگینه بدن شده ایپا، ای ری ای که احشای داخلی همه تکون بخواه عین مشکی که تکونش میگه هیچ آبی توش نمونه داریتیم چی میگه؟ این از ازباب چیه؟ حرکات فیزیکی چون همه مسیرها رو به پایینه تصالب فهم بودیم؟ مسیر کالیس ها به طرف لگنچه لگنچه به طرف حالب حالب به طرف مسانه مسانه به طرف پیشابرا پیشابرا هم به طرف خروجی همه مسیرها رو به پایینه این کوزه ای که برعکسش کرد. اخیرا وقتی تکون میدی کمک میکنی به خروج شن و سنگ، خود کم تحرکی فتقهای شکمی و زیرنافری میاره و ذریب رسوب رو در صفرا و در کلیه ها بالا میبره. حالا وقتی تحرک لازم در سطح مستوی داشته باشی، مایعات لازم هم یا کمک به خروج شن و سنگ میکنید. خب پس اینکه اما با هم چی شد؟ سیاه دونه با اصل که بخوری ضد سنگریزه ها و شن کلیه و مسانه و سنگ مسانه است این رو میبره سیاه دانه سخته سیاه دانه اگر با آب مرد سبزی مرد اگر با آب مرد قاتی شد برگاه درخت مرد اگر قاتی شد برای بواسیر مفیده به صورت زماد این هم به جای پماد همورایید که یک مسکن شیمیه این هم تو بحث تسکینش مفیده هم تو بحث ترمیمی هیفته هم خود زماد سیاه دانه در درمان زگیل مفیده مخصوصا وقتی که مخلوط با سرکه طبیعی سیب باشد در درمان زیگیل چیه؟ مفیده نظیر جوهر نمک نظیر شیرابه انجیر تصافه پهمونی؟ حالا اونا میسوزونه پوستو تخریب میکنه اما این نه دیگه پوستو تخریب نمیکنه فقط طول عمر زیگیل که بین یک سال تا دو ساله تا خود به خود از بین بره طول عمر درمان رو کاهش میده نه در مدت زمان کمتری زگیل بهبود پیدا میکنه مطلب نوزده برای لک صورت ککومک ها یا لکهای های قهوه یا لک های سیاه یا لک هایی که مادرزادیه مثل ماه گرفتگی ها اینجا کمک میکنه به درمان بعضیا درمان میکنه ککومک ها رو که به صورت زمان حالا خود سرکه سیب یکی دوم پودر سیاه دونه تو سرکه سیب بعدا محل ککومک ماساژ بدی هر روز چند با ککومک ها و لک ها به صورت مالیدنی و همچنین خوردنی خب خوردنیش یکیش بود چیه؟ سیاه دونه با سرکه بخورد یکی دیگهش چیه؟ مخصوصا خیسانده یه سیاه دونه در سرکه یکی دیگه اشتی این میباهای خشک باره مثل چلغوز خام روزی یه قاشو پرو خوری چلقوز خام اینم دردرمان که کنه که صورت مفید نوزدهم کسانی که پوست بدنشون پوست پوسته میشه چه جنبه آرزی چه جنبه جنتیکی حالا یه بار خشکی پوستشون زیاده یه بار بیماری دعا صدت و پسوریازیس دارن یه بار دیگه نه بحث بیمار یا خاصه جنتیکی دارم مثل این که هر ماه چندین بار یا دو بار حداقل پوست میندازه بلا تشبیه مثل مار که پوست میندازه کل بدنش آه, کل بدنش اینجوری پوست میندازه اینجا میتونم روغن سیاه دانه هر روز تو وان حموم برن 20 دقیقه در وان حموم باشن بعد که بیرون اومدن با روغن سیاه دانه یعنی سیاه دانه ای که تو روغن زیتون چی شده؟ بیست دقیقه نیم ساعت جوشیده حالا با روغن سیاه دانه بدنش رو ماساژ بده دیگه پوست پوسته بودنه بدنش چی میشه؟ عمو خوب میشه اون قسم سومش کمک میکنه به درمان ولی چون مشکل جنتیکیه باز راه های جنتیکی رو باید تی کنیم مطلب بیستم از فوائد سیاه ضد دردهای مفصلیه حتی کمک میکنه به کاهش درد آرتروز و کمک میکنه به ترمیم اسفنجی های سر استخونه ها و همچنین جلوه پیشرفت بیماری آرتروز یا ساییدگی استخان و مفاصل رو میگیره. مصرف سیاه با اصل. صد دردهای مفصلی حتی آرتروز ها. 21. کسانی که سردردهای مزاحم دارند و یا سردردهای مزمن دارند به نوع سردردهای شدید میگرنی. یا سردردهای شدید شقیقه ای اینجا سیاه دونه با اصل میخوره و هر روز دوبار صبح و شب شقیقه هاش رو و محل درد رو با روغن سیاه دونه خالص ماساژ میده این سردردهای میگرنی و یا شقیقه ای و یا سردردهای مزاهم از بین میره خوب میشه دو کسانی که سینوس هاشون ملتهبه یا سینوس های چرکی دارن تو پزشکی جدید بحث استفاده از محلول سروم نمکی هست اگر مثلا چرکی عفونی باشه بحث استفاده از آموکسسیلین سیفالکسین آموکسیکلاب هست این چهی خوشکانه که متقصص های گوش و حلق و بینی میدن یا فوق تقصص های حنجره میدن یا فوق تخصصی فک و صورت میدن تو بحث تروماتولوژی حالا تو پزشکی اسلامی مؤمنه چیکار کنیم این سینوزیت التهابی و یا اوفونی خوب بشه دستور اول چیه که مستحبم هست قبل هر وضو استنشاق مزمزه غرغره با آب آب مطلق باشه سالم باشه ولرم این بله دیگه قید طب مکمل و قید فوق تخصیصی میکرو بیولوجی. یعنی سلولی و مولکولی. حال اگر سینوساش التهابی نباشه خب عفونی باشه چه سینوس های فوقانی چه سینوس های فکی که پشت لپاته اگر عفونی باشه میتونی سرم نمکی بگیرید بعد گرد پنسلین هشتتر برریید تو سرم نمکی هم بزنید با این بینیت بشوری وفوننت های سیوس های فکید خوب میشه در طول زمان ها بدون اینکه چلخاش کن و آنتی بیوتیک بخورید بدون اینکه این رو بخورید. اگر کسی مهمنا ها وفوننت های سینوسی دارد و فشار خون هم دارد اینجا سرم نمکی براش خوب نیست در آب ولن پنسلین 800 هزار مخلوط کنه با این بینیش بشوره که مشکل فشارخونش بالا نره و همچنین مؤمن ها های ها سینوس ها فوقانی فکیش خوب بشه تا اینجا همه رو گفته بودیم قبلنها حالا تو مباعثه جدیدمون بخوره بخوره سیاهدانه مثلا یه مش سیاهدانه میزی تو قابلامه تو آب آب قابلونه می‌جوشه بخارشه با بینی نفس کش بخور بخور سیاه دانه نه دودش بخور سیاه دانه و همچنین استنشاق این آب جوشیده که سیادان توش جوشیده ها با این آب جوشیده سیاه چگاه چیکار می‌کنید بینیات با این میشوری عفونت های سینوس های فوقانی فکیت اب می‌ره پس بخور سیاه دانه و همچنین استنشاق آب باقی مونده که بینیش رو با این تمیز کنه و استنشاق آب سیاه دانه که توضیح دادم ضد چرک و عفونت سینوس های فوقانی و فکی پشت سevo کسانی که ورم بدن دارن اورام صورتشون پف میکنه چشماشون پف میکنه بدنشون ورم میکنه مخصوصا زانوب پایین ورم دارن حالا علل مختلفی داره ورم تحال ورم کبد ورم کلیه ودل اورام که تو رو میگه همین حبت و سودا از حالا تو کتاب پزشکی هم میگه بیست و سبوم ورم و زعب خوردگیه زرب خوردگی مال کوفتگی است. یه بار تو طب مکمله میگیم زردچوبه تو زرده تخمومق فضا جایی که زرب خوردگیه کوفتگی پات مثلا میگیره. یه بار دیگه کوفتگی در اثر زربه از شدید است میگیم سیاه دونه. ولی سیاه دونه ای که مخلوط با روغن زیتونه. یه بار دیگه نه اون محل هم کوفته هم خارش داره. اینجا سیاه ای که مخلوط با قسط یا کوچنه، تصایب فهم آقا جو؟ اینجا زده اگزما هست، زده خارش پوست هست، سیاه که زده کوفتگیه با اصلا مدلاش مختلف هست. مثلا هم کوفته شده، هم استخونش مومیه کرده. حالا اینجا سیاه ای مخلوط با عسل، میزنیم باشه. به چند ساعتی که گذشت مؤمنه بعد با محلول مومیا. محل موعیگی و ماساج می تا تو ترک استخون هم جوش بخوریم بیست و چهارم کسانی که بیماری عفونی واگیر قارچ کچلی قارچ کچلی دارن یکی از بیماری های افونی 809 بیماری عفونی دارن یکیش هم چیه؟ قارچ کچلی حالا اینجا مالیدنه روغن سیاهدانه یا اگر جراحت میده پودر سیاهدانه روش بریزی کسا رو روی محل قرارچ کچلی بریزی ضد کچلی سره همزد کچلی ناخونه چون ما گاهی کچلی ناخون هم داریم ها. ناخون ها خورده میشه ساییده میشه در این حالت چون این گوشتشون گه جراحت داده بیست و زد اگزماس به صورت مالیدنی گفتم در روغن زیتون باشه بیست و کوبیده کبیده سیاهدانه با هندوانه هنزل که سمیه ها خربوزه ابوجه حنزل سیاهدانه با هندوانه ابوجهل به صورت زماد اگر به ناحیه ناف بزنن ها زده کرم‌های روده مخصوصاً کرم کدوه اگر متخصص گوارش خوب مثلا این بچه کرم کدو داره یکی از داروهای بسیار مفید خوبیده سیاه دانه مخلوط با هندوانه حنزل که به ناف بچه بذاری باشه کرم کدو و کرم‌های روده به صورت کرمک یا انگلای ریز دفع میشه حالا یه چیزای دیگه هم هست تو بحثای جانور درمانی که گای ابو علی سینا تو قانونش میاره و یا چقمنی تو قانون چه میاره و یا محمد مؤمن حسینی تو تحفه حکیم مؤمن میاره یا بعضی از محققین جدید در کتاب جانور درمانی آورده مثل آقای مقدم حالا تی این کتابم آقای دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی تغذیه و گیاهان دارویی در صفحه 48 میآورد که اگر این سیاه دونه رو که پودرش کردن مخلوط با خون پرستو یا خون یه حیوان دیگه نمیخوام اسم ببرم و این رو در محل پی سی بمالن پی سی خوب می شود با ما آسون خوشمزه چی چی گفتیم؟ گفتیم برگهای قاضیابی این رو دم کنید توی برنج شلتوکدار درمان بیماری برست یا پی سی یا وی تیلیگوه کردیم امجون چی شد؟ اون مال خوردن اما از ظاهر بمالیم پودر سیاهدانه در خون پرستو. هر اصلا ما یه پرنده یه دیگه از گنجوش یه کم بزرگتره پرای کشیده مانورش خیلی سریعه قابل عرض قرب و شرق و این هواپی تو فیگور میگه این آکروباسی اینا طفله <تفلا> که پرست توی فیگور هم نمیگه مانورش از همه اینا بهتره <تفاق> مالیدن این هم توضیح دادم مطلب بعدی اگر پودر سیاهدانه یا خود سیاهدانه ما احتیاط میکنیم خود سیاهدانه رو مخلوط با اصل کنیم و بجای خانومهایی هایی که دردهای رحمی دارن مخصوصا به نوعه دردهای زیرنافی چه در هنگام حاملگی چه در هنگام شیردهی بل در دورانی که قاعدگی دارن و قاعدگیشون دردناکه گل گلرنگ و گل خارمریم قبلنا گفتیم گفتیم زد دردهای قاعدگیه به جای قرص شیمیایی هیوسین حالا یکی از داروهایی که زد دردهای رحمیه چیه؟ مخلوط سیاه دانه با اصل که به جای بخوره زد دردهای رحمیه حتی کسانی که مثلا قاعدگی های شدید دارن و به خاطر قاعدگی شدید هم ضعف عمومی رنگ پریدگی، افسردگی، کمردرد، درد زیرنافی، درد پلو یعنی بیماری دیسم ناره یا قاعدگی دردناک یا بیماری منوراجی خون های شدید قاعدگی دارن در همه این موارد که توضیح دادم و باز این سیاه با اثر به جای خوبه براش و دهت های کم میشه و از بین میره بیست و کسانی که مثلا خانومشون یا دخترشون یا عروسشون عفونت مهبلی یا عفونت رحمی دارن یا التهاب در این قسمت ها دارن اینجا هم سیاه ضد التهاب و ضد عفونتهای های میتونه یک روز در میون در محلول آب سرکه بشینه میتونه سیاه دونه با اصل بجوه بخوره میتونه در جوشانده سیاه دانه به مدت 20 دقیقه بنشینه سیام اگر سیاه دانه مخلوط بشه پودرش با روغن نارگیل یا با حنا یا هر دو اینها با حنا زد ریزش موی سره یک بار ریزش موی سر هست میخواییم تقویت مو کنیم به خوراکی مثلا خورما بخوره مثلا شلتوک برنج بخوره مثلا مغز با عسل بخوره یه بار دیگه تقوییت ساقی مو خواهیم کنیم و زد شوره مثل محلول رزماری یا محلول اکلیل کوهی ولی به شرطی که این بیمار زعف اعصابش شدید نباشه یعنی حالا تعبوه میگیره. و به شرطی اینکه که این بیمار حامله یا بچی نباشه اگر نه سخت جنین میکنه و شیر مادر کمش. یه بار دیگه نه تقویت مو میخوایم و ساخه مو و رشد مو حالا فرض کن هفته ای دو بار میره حمام نیم ساعت قبل حمام روغن سیاه دونه به سرش میزن عطریت ساقه مو و رشتمو از این ضعیفتر روغن بادام تلخ از هر دوی اینا قویتر روغن چی اوجو روغن قسط یعنی روغن کوشنه که هم ضد خارشه هم ضد اگزماست خارش پوست سرش و اگزمای پوست سرش هم از بین میره از هر ستای اینا قوی تر چیه؟ روغن کندوش از ستای اینها قوی تر روغن کندوش کندوش محل رویشش هندوستانه تو ایران نداریم از هندوستان وارد میشه خودتون کندوش میخرین پودرش میکنین تو روغن زیتون بیس دقیقه نیم ساعت میجوشه بعد این رو مومن ها ساعت که شد هر وقت مخوایی بری همون 20 دقیقه نیم ساعت قبل همون به سر. بسه قوی ترین داروی روغنی در رویش موی سره اینم مؤمن همان این, هم این کلم پس روغن سیادون هم گفتیم روغن کندش گفتیم محلول رزماری یا اکلیل کوی گفتیم و همچنین روغن کندش مطرح کردیم تو کتابم هم شما رسیش میگه این پودر سیاه دونه رو با روغن نارگیل و همچنین با حنا یا روغن حنا قاطی کن ضد ریزش موی سره یعنی اندیکاسیان مکانیسم اثرش چیه؟ تقویت ساقه مو میکنه و جلوگیری از ریزش مو میکنه سی و یک سیاه دونه را اگر بکوبیم و در گلاب مخلوط کنیم برای زخمهای مزمن و کهنه ساق پا و خارشهای پوستی این ناهیه موثر می باشد. حتی در کسانی که بیماری دعا صدف دارن و یا پسوریازیس دارن. حالا چه به نوع خفیف چه به نوع شدید چه به نوع معکوس و چه به نوع پوسچولر بعد گفتیم قبلنا تو تبور رسول که با کتیرهای شستشو بدنش رو محلهای رو شستشو بده و با محلول کلتار این محلها رو شستشو بده که یه محلول گیاییه همچنین در زخمهای مزمن و کهنه باز قبلن گفتیم گفتیم یکی از عوارض سوء قند کنترل نشده بالا ایجاد زخمای عفونی پوسیدگی بافته به نام قانقاریا گفتیم قوی دارو در این زخمایی که چاله چاله گود گوده زرچوبه خالصه در روزی یک بار بزنه و در 24 ساعت یک بار عوض کنه و این باندای گاز استریلش غیر روغنی باشه اینا رو قبلا گفتیم رد زخمم رو پوست نمیمونه اونم به اینجا حاشیه بزنیم سی و دو مالیدن پودر سیاهدانه وقتی که مخلوط با اوره هست و یا ترکیبات آمونیاکی اینو رو اگر روی کورک های سر و پوست بگذارن رو کورک سر باز میکنن مدل مختلف دیگه هم هست که باز قبلن ها گفتیم مثلا گفتیم براده آهن به اضافه گوگل به اضافه زمنیخ به اضافه عسل کورک ها یا دانه‌های چرکی بزرگ یکی دو بار که بذاری سری سریع سرواز میکنی بعد گفتیم محل برای اینکه که افونت نکنه گفتیم جاش بعدن چکامه میکنیم زرچوبه خالص میریز. این جمله‌ای که گفتم قبل از زرد شده، این چهار تا براده آهن پودر آهن اصل زرنیخ گوگر این از داره تول معارفه پزشکیه مالی علی افسر خیابی زبونش هم لحجش ترک این از اون کتاب گفتم سی و سوام مالیدن سیاه‌دانه ای که در سرکه خیسانده شده برای زخم های آبدار مثل زرد زخم و پیره و اگزماهای تر و زخم های عفونی مفید است چیزایی دیگه هم هست ها. مثلا اگر کسی بیماری پمفیگست دارد که یه بیماری پیشرفته جنتیکی پوستیه یعنی بیماری تاول داره کل بدن یا بخشی از بدنش تاول تاول میزن گایی هم تاولا بزرگ میشه اندازه نصف استقام یه نارنگی تاولا خود به خود میترک بیماری پوستی پمفیگست با پزشکی جدید دارو نداره اینجا دارو دو چیز. یکی پرتقال شیرین با صابونه با نهار با شام پرتقال شیرین می‌خوره. دوم یک داروی ترکیبیه. یعنی یک عدد پرتقال شیرین به اضافه دو عدد لیمو ترش عادی. مثل لیمو آمانی یا لیمو ترش شیرازی یک عدد درست شد؟ به اضافه 20 گرم گلار این ستاره مخلوط با هم میکن. مریض بین روز و اسانه یوا شش میخوره. کسانی که بیماری ژنتیکی پمفیگوست یا بیماری تاول دارن این داروش اینه که گفتم پزشکی جدید دارو نداره قابل عرضز داخل قج کشور. داروش اینه معمننا مریزه را بشن حالا تو بحث این که به صورت زماد یا پماد باشه این که الان مالیدن پودر سیاه دانه ای که خیسانده شده در سرکه برای زخم های آبدار حالا فرض کن بعضی تاولات ترکیده مثل زرد زخم و غیره و اگزماهای تر و زخم های عفونی مفیده اگر تاولاش ترکیده بود حالا به صورت زمادی یا مالی دنیا مفیده سی و چهارم سیاهدانه اگر در روغن زیتون بجوشه، بهترین داروی رینیت رینیت مخصوصاً کسانی که دارای عطسه های زیاد توان با آبریزش بینی این میتونه تو بینیش بچه کنه سه قطره سه قطره سی و کسانی که لقوه جوانان یا نوجوانان یا میان سالان و کهنسالان دارن لقوه اللقوه عربی افسح عربی فسیح تو پزشکی جدید میگن بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت داروی واقعی پزشکی جدید نداره حالا داروی طب اسلامی و طب مکمل چیه؟ چند تا دارو داره یکیش سی و مؤثر بر لرزش و لقوه به صورت خوردنی جوشانده سیاه دونه در روغن زیتون این رو بخوری و ماساژ بدید هم لرزش غیر اختیاری به اصطلاح میگیم بیماری رعشه یعنی لرزش غیر اختیاری هم لقوه به اصطلاح علمی میگیم چی بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت علمای صالحشیه تو کتاب های روایی روایات آوردن علامه مجلسی از شیخ رو عاملی از محدث نوری از علمای صالح معاصر هم مثل آیت الله محمدی ریشعری در دانشنامه احادیث پزشکی یا آیت الله شیخ عباس تبریزیان در کتاب تب رسول المصطفى تو بحث مفاصل و اینها اصلا بحث لقوه مطرح کرد. نگاه کنید چند صفحه و همچنین آیت الله مرحوم مصطفی نورانی تو کتاب طب اسلامی مطرح کرد نه جلد نگاه کنید این قابل عرض قرب و قروشق مطلب 36ام زمد پودر سیاه دانه جوشنده در روغن زیتون به ناحیه ملاج ملاج کجاست ابتدای مسح وزود سه استخانیه استخون جمجمه این بالا که شیب زاویه ای داره بعد با مرد و زرده تخمان بالا ملاج بچه تو خب. زماده پودر سیاهدانه این که جوشانده شده در روغن زیتون به ناهیه ملاج برای بهبودی از زکان مؤثره سی و هفت کسانی که تورم مفاصل دارن و جمع شدن مایه در آنها هست حالا این دو جوره یه بار این که از مفصلت زیاد کار کشیدی به اصطلاح تخصصی بیماری تنیس بازان اینایی که راکت دارن پین پنگ یا تنیس میزنن اینا یا قدیمی ها چوگان بازی و مانندو یا کسی چکشکاره، تراشکاره، مثلا صافکاره، بطونه کاره حالا این مفصلش مومنان ملتحد میشه متورم و آب میاره اینجا باید به مفصلش استراحت بده زماد سیاهدانه با اثر کروش بذاری یا مفصل میخواه حالا منظورم تو کتابای پزشکی تخصصی مفاصه یا ارتوپدی یا فوق تخصصی سرزانو بایدان اسم بیماری میذارم بیماری تنیس بازان استله پزشکی خواستند حالا این بنده خدای دکتر متخصص علوم زیستی سی و هفت زد تورم مفاصل و جمع شدن مایه در آنها یعنی زد آب آوردگی مفاصل به صورت زمارد و خوردنی و توضیح دادم قوی ترین دارو در درمان التهاب مفسر یعنی آرتریت دروماتایی همین پودر سیاه دونه مخلوط با عسل و هر مفسر دردناکی که یا دست ساکت میشه از این چسب‌های شیمیایی مال کمر هست از او قوی تر از پماد اکبر دو گیاهی قوی تر از پماد شیمیایی پیروسکام یا دیکلوفناک قوی تر از پماد انگلیسی کریم فاردیان قوی تره. از پماد آمریکایی جینگای قوی تره سی و هشتون سیاه که پودرش مخلوط با روغن زیتونه اگر کسی سستی کمر دارد و یا ضعف جسمی دارد از باب سرد مزاجی و یا لقی کمر دارد در هر سه مورد پودر سیاه دانه مخلوط با اثر رو به صورت زمار یا مخلوط با روغن زیتون رو به صورت ماساج ملایم قوس کمرش درد میکنه ماساج ملایم پودر سیاه دانه مخلوط با روغن زیتون سستی کمر و ضعف نیروی جنسی او و یا سعد مزاجیش چی میشه همجا؟ خوب میشه سی و پودر سیاهدانه مخلوط با روغن زیتون یا مخلوط با عسل به صورت زمال یا به صورت ماساژ اینجا کسانی که دردهای عصبی در نایه کمر یا کسانی که سیاتیک دارن یعنی القنساشون القنسا درگیر در بین مهره است برای دردهای عصبی مانند درد عصب سیاتیک و شاخه‌های آن چیه مفیده مطلب چهل خوردن سیاه‌دانه مخلوط با عسل، مردها و پسرهایی که ازدواج قانونی و شرعی کردند چند سالن بچه دار زیاد کننده اسپرم سالم مرد یعنی جایش اسفرمش ضعیف نباشه خوردن سیاه دانه با عسل، مخصوصا شبها قبل از خواب یه قاشق مرب بخوری با عسل بخوره و حالا با اصل به جوره بخوره, بخوره. تصالب فهم بودی؟ خوردن سیاه دانه با این توضیحاتی که دادم زیاد کننده نطفه مردان بوده و سستی کمر را مرتفع می سازد این داروی گیاهی گرانبهایی که در دسترس بشر خدا قرار داده، بشر باید بخوای زحمت بده، کاشت و داشت و برداشتش سعی باشه، کردن به صورت استرلیزه و سعی باشه، سیر نظر دکترای گیاهی باشه، نوع مصرف، مقدار مصرف، زمان مصرف، دوزش دارو تا چه مقدار مصرف کنه؟ سیر نظر یه متخصص علوم گیاهی یا متخصص داروشناسی گیاهی حالا باید چیکار کنه موامنا عمل کنه آثار و فوائدشون و خصوصیات بیجش رو می‌بینه، پس این فرمایش رسول الله یا بقیه معصومین که میگن شفای هر دردیه که پیغمبر اکران فرمولن یا امام صادق میفرماید الفدا تا هزار بیماری رو درمان میکنه و مثلا چلتاش تاش هموردیم صل محمد و محمد, عالم محمد.